آقا نبرای یعنیم قافلین المعصومین و نفضایه مطمئن و عداره نشمه اللهم حفظ ناجم یک بحثی که بعد از جیهتی زوافق متحدق شدن خود جیهت قلوحویس که از کلمت شیخن در وسائل و بودن همه آلام شد و وجودی ده کردن برای وجهه اولدارهی مثل اجماع و وجود و انسیداد سحیل و مردم مستاد در تمام وجود مناقشه کردن و خودشون به اصل این کتاب که فکر نمی حالا حالا مواضحیشون باشن حالا به اعتبار تعدد و ادارت شدن اگر لغمی مطلبی رو فرمود در صورت تعدد و ادارت قابل قبول از خودشت هست و ادافرن ترس کنم روچه به بحث حجیت قلید و ما هم به مناساستای متعذف متعرض این نکته شدیم دیگه نمیخواد خیلی طول و تفسیص صحبت کنیم اولا تر این مسئله که از باب تعدد و ادالت یعنی از باب شما در مورد خارجی و با تعدد و باشه یا اصلا به این خبر سقر و از باب حجیت خبر سقر مخترای واقع این ها همش مبنیست ولی یک نوع تحبت به قول روحه احساس این تفکر مثلا اجماع هست مخصوصا رو تفسیری که مرمون استاد که اجماع کاشت از قول امام باشه اینجا مراده از اجماع اینجا اجماع اخلاع هست از اجماعه علما نه مراشد اخلاع علما در نویشتهای خودشون در معانی لغت به کتب لغت مراجعه بکنه مطاعت کتب تفسیر نگاه میکنید در کتاب فقهی نگاه می‌کنید در کتاب تاریخی نگاه می‌کنید حتی مثلا در کتاب طب قدیم چون الفاظ عربی به کار می‌بردن برای اون موارد یک می‌کردن مثلا حاله صحت حاله کیتری متعارف بوده این مراد از اجماع اجماع تعبدی نیست هر割 یک امر متعارف بوده این رو اگر اجماع تعبدی بگیریم که خب جز تعبدی می شه اون که از اون واضحه اگر اجماع به این معنا هم که ما گفتیم باز هم بوده. مراد ما مئیار ما در تعبور این است که خود ما اطراف موضوع رو درست نکنیم به خاطر یک نقشی دیگری برای روی اعتماد بکنیم مثلا دیدیم اقلا همه علمه ها اعتماد کردن ما هم اعتماد کنیم و اگر اعتماد اونها نبود ما به قرل و اعتماد نمیشن این تعبور منوش اینه. در مقابل تعبوری که عقل اصده که علم یعنی یکی آگاهی و یکی هم مسئله تحلیل و اندیشه و فکر میگه نا. نیازی به تعبض نداریم ما هم آگاهی های تاریخی داریم هم اطلاعات تاریخی داریم هم اطلاعات از لغت داریم هم میتونیم اونها رو تحلیل بکنیم هل رفت بدیم تحلیلی رو که متعارف در حصول در شناهات لغت به کار میبرن به ذهن ما که سابقا چند بارن توضیح دادیم و این بارا مقصدن در محل خودش همون که ما به علامات حقیقت تبادر و سهت هم رو سه علام و سهت سلب و علامات دیگه این بسه سهت استقام و صحت تقسیم و اینجور به سال گذشت ما کردیم این که مثلا گفتن علامت حقیقت یکیش تبادر یکیش مثلا سهت هم رو یکی سهت این یکی یکی نیست مجموعش یه عمله یه عمل ذهنیه یه تحلیلیه یعنی مجموع اون حرفا مجموع تباور و صحت هم دو سه عدل و سرب و سعادت تقسیم و سعادت استقام مجموع اینا یه نوع عمل ذهنیه که ما انجام میدیم یک نوع تحلیل ذهنی است که ما انجام میدیم تا به اون تحلیل نتیجه میکنیم که این ذوائع با این مقدماتی که معجزات خارجی از نظر جغرافیایی که مثلا در کجا کدامو به دنیای هرند بوده ما می توانیم اروپا به اصطلاح بفهمیم این مراد از تواضع و علامات حقیقت اینه یک عمل به سبک جامعه آنالیز معریض یک عمل تحلیلی است این عمل تحلیلی یه رکنش تواضع یه رکنش فلسفی صحت عمله یک رکنش فلسفی سردسلز یعنی عدد و چند سر, سر برای حکمت و هلا پس منابرای این اصولاً این مطلت که خبر واحد خبر جد یا تعدد و ادالت که اینجا از دو استاد فرمونیم یا تمثب کنیم به اجما که خب ادهی بستن یا تمثب کنیم به به این دو تا این سرنی حالا بیره تمام اینها ها ولی و این بود اصولاً لغت یک چیزی نیست که خارج از زندگی ما باشه لغوی یک انسان مخصوصی که داره کار خاصی باشه و کلیه ای که ما میدونیم تقیر راحت میتونیم افکار اونها انگیشه های اونها رو باستانی بکنیم مصادر فکری اونها رو متلق بشیم اون مصادر رو ارزیابی بکنیم زایی نزم چشم بودشون رو <تصفح> دو دون هر عادی شهادت رو تو قرآن شهادت رو همین اینه که هر که که فارسی هم الان همه لغات غیر از عربی توی عربی چند تا کلمه فارسی یا رومی از مثل قسطاس یا مثلا سرجین اینها که محدوده مشکل درسته. البين که هم چرا که نه عربی نیستم با فارسی صحبت می‌کنم بحث تاریخی داره. این هم بحث خودش تاریخی داره همه لغات نمی‌خوادش لغات کی هست الان عرض میکنم پس ببینید ما تو این مسئله اصلا دغدغه هست که شما ببندیم و تعبد و فقط خب ممکن از ادری از علما در تاریخ هستم. از هست به قول لغوی ها مراتیه امی کردند و این هم عمر طبیعی سنه در ما چون علم پیشرفت داره رو زمان جلو میره وقتی این انسان دائره علمش و دامنه علمش گسترده نبود خایناهایی تحبود رو میاره این طبیعی امکانات نبود ارتباطات نبود شواهد تاریخی نبود در بررسی های جلال دانهی نبود و مخصوصا خوب دقت رو کنید. در خوضه های ما اگر آمدن بحث لغت شما متن کردن یا همینا به قول یا حوزه ما کلیات احوال بغا رو گفتن که ما مثلا از توادر و صحت هم نمی‌دونن بشه در در تاریخ میگه هر جایی که در شده و یا آمدن موردی مثلا کلمه سعی توش کردن کلمه خننه توش ذکر کردن غنیمت توش کردن موردی به کتب لغت نگاه کرد لذا ما صابرها در بحث اشراط تا قبلی این پیشنهاد رو داشتیم همشن که در خوزه های ما چند سال ابتدایان تقریبا نه و صرف می شد و حتی نه در حد مقال معروش اشتغال دیگه مثل مبنی کنده می شد خب به جای اینکه نحو رو ما اشتغالی رو خود لغت خودرو لغزش اشتغالی رو کنیم چون نحو رشد داره حالا در دنیا دانشگاه هستند در ادبیات در خیلی مدت کمتر بسیاری بسیار تاریخی ها خوب لغبی و خوب دارن ترلو لغبی دارن. که مشکل خاصی رو تولید میکنن چون در حوزه های ما متعارف نشده یعنی متعارف شده همون کتاب نحوی معروف خونده بشه یا پرسید مثلا نحر اشتاقیه به تصورات سار مغنی که ابن هشام باشه اینه قبول داریم و در جایی که در لغت آمدن موردی چون نگاه کرده، یعنی ممکن است مثلا در لغت به حیث ماده ما مثلا من با مثال صد هزار ماده لغوی در زبان عربی داشته باشیم کنز و اون که در فکر بشناتن ممکنه هزار که ماده باشه. یعنی اون مقداری که در فکرش مراجعه کردن یه مقدار محدودی بوده اینا یک بقیه کتاب خیال میتنم مثلا یک کتاب بسیار مهم میست و سرداشتی این چی در رو بود. فقط این کلمه سریب یا این کلمه فرستان قلمه طب از سردی ما بود در حوضه ما بررسیه های لغوی با ریشه های تاریخی جز به دروس و میشه که این مشکل زبان عربی که مشکل نداره افراد یکی تابها رو که یک افراد معصومی نبودند، محدودیتی داشتند، زیر فکری معرینی داشتن خلیل علا این رو به یک نحو معینی نوشته. اصلا بعدها خود حتی ترتیب کتاب رو عرض کردن. چون ترکیبش ترکیبی درستی نبودی ترکیب خاص خودشون دارم قبطه چیه ترکیبی منهجی، الفاظی خصوصیاتی و فرسون قلید نبه معلیه ما خیلی راحت میتونیم با مطالعه کتابش با شهر خادش با منطقهی ای که ایشون به تحقیق و تفرح هستن، با خود شواهد لغت عرب تاریشه در لغت عرب لحجه های عربی قیشه هایی که دارن یه راحت مشکلی الان ایجاد نمی‌کنه به جای اینکه اگر 4 سال سه سال صرف میکردن تا مغنی و متوله بشن ما در دو سال محسوسن که الان کسایی در حوزه میان دیگه غالبا یا سیکل دارن یا دیپلم دارن به علاوه وضع علمی خیلی فرانتز تا صابرهن مظاهر که زمینه عمومی علمی رشته بالا. این تلویزیون هایی خیلی مسائل علمی رو به صورت اینگ حسابینه شود برای بزرگان هم سخت بود مثلا کتاب حیوان ارسطو رو نگاه بکنید چاپ شده هر چن صد بعداً خب این یک چیزه دیگه داره برای خودش ممکنه ده برابر اون بالاتر که ما دو هزار هست. رو 2500 سال قبل بوده امروز بچه‌ها 45 ساله تو فیلم‌های تلویزیون نگاه کن ما حیوانات و دریا و انواع ماجرا کتاب محض ارسطو نمیان میاد چیزی یعنی بعض علم به طور کلی عوض شده زمینه علمی عوض شده زمینه های این تعبد که تعدد باشه و ادارت باشه و جسه خبر باشه و اجماع باشه و که داره خبر بله خبروییت رو تا یک میشه قبول کرد اینکه اونا هم یه تحلیل خاص خودشون داره اونا هم این طور نیست که حالا مثلا مصلح باشه یه طوریه میده و اما این صداد یعنی معنیش اینه که ما در لغت برگردیم به زن الان ما به طور کلی شواهد فراوان میتونیم پیدا بکنیم نیازی به زن نداریم یعنی الان با وجود نوشتارها و چیزهایی که به دست ما رسیده که مخصوصا در مباحث مفردات لغوی وقتی نگاه میکنیم کتاب مشهور ما مثل جواهر یا مستمسک یا فرسون مثلا کتاب با حضرت غالباً به مسادر و منابع خیلی مهم لغوی هم مراجعه نمی کردن و همین کتاب های پیش هم مدتیسی در های ما دیدین یه چاپ هم شده ما هایی وقتی می معنی لغوی از منجد و احراب رو مقالب شده که طبیعتاً هیچ ارزش علمی و تاریخی ندارن نه اینجا اصلاً آبل احتمال هم افکار خوبون رو بر زنی که حاصله از این جور مسادر خیلی شف و نظام آزدوی اشتایب میکنه که اینا اصلا فقط استعمال میدن این اینطور نیست؟ اینطور نیستن چون به منابع مراجعه نکردنشون به کارهای دقیق لغوی در این جرم مراجعه نشده و این صاحبان علمای اسلام در این رشته هم زحمات زیادی کشتن مقدار کمیش تو حوزه های شیعی اما شده اون راجعه برمه خبرن گفتم یه توضیح میدم یه می توضیح اینجا عرض بکنم ببینید اصولا مجموعه کارهایی که ما در لغت داریم این طور بیستم اونجا تحبت باشه ما در کتابه لغت قدیم هم تحلیل داریم ریشه یابی داریم اینکه اصلش چی بوده داریم بلکه بالاتر از این یه بسید که الان هم در دنیا قرار مفرح میکنن درست هم هست اصولا محتقیدن این لفظی که دارایی معناس بیشتر برمیگرده به اون اصوات اون رابطه ای که در اسواست موجوده مثلا در آلا در کتب ما همین کتبی که در حوضاییم مثلا علمه علمه روی عین و لامومی به این ترتیب علمه که این معناش چیه علم چیه زعنه چیه در صورتی که الان این صحبت هست که ممکن است در صلب جامعی مثل دنیا عرب این و لامومی دارای یک معنی که در شکلهای مختلفش بروز میکنه یعنی علیمه لمعه اصلا این لمعام لام یعنی مهمی عین و لام و می لذا عین و لام در حقیقت چی صورت پیدا میکنه اینو و الان و می الان در کتابهای جدید نمیدونن فقط کلمه لعنه ها همونجوری فقط اون کلمه را بحث بعدی ما چون لعنه رو کلمه لعنه اصلا بحث کردیم یا صبه درستانی که بحثیت بحثیت بحث کبرمی هم داره اصلا معتقلن اون اونچه که داره رابطه با معناست این لفظ نیست اون صوته و اینا آمدن حتی مثلا یه رابطه بیمین این صوت و معنا چون این از روح حلقیه لام مثلا از روح بستانیه نیم از روح اول یک رابطه یعنی سعی کردن اینا را هم تحلیل بکنن انصافا و عرض کردیم الان در دنیا جدید مثلا مطرح شده. شده تونجهی که من میگم، حضرت من چون علمم این مراقب استثار نکنیم در درستان شد نباشه کتابی که متعبی رسمت ها شده مال زمان آن در مقداد ابن جنی در حسائصه سی سب و چون نمیده این مسلم جنی مثلا در اول حسائص کافلامی ببنیست کلمه کلمه، لنکه، کمله، اینا رو همه رو آورده که یعنی این صوت رو صوت حساب کرده هم. این اصوادی که از کاف، ولام، ممین به قدم کنه ملکه هست، کمله تویش هست، لنکه تویش هست البته این رو هم آمادن محاسبه کردن که از این شیش مورد لغات مختلفه اولا بعضی از لغات گفتن اصل نداره اصل نداره یعنی به چه به معنا یعنی اگه یک لحظه آمده این به همین معنا آمده اما این اشتقاق پیدا بکنه سریان داشته باشه مثلا ردن این لبه آسین اردان الان اروار ردن میگن ردن دلنگری حساب انتقار رو میشه این, این اصلا نداره چرا چون نمیاد روی روی درن ندر بیاد حساب بکنه که با این رابطه داشته باشه مثلا احتمال داره که یه لحظه غمی یه لحظه هندی باشه یه لفظه باشه پس این <تصفيق> که آقای کوی اینا اهل خبره نیستن نه اهل خبره کار کرده ایش مراجعه که محدود لغته لیکن در مواحص تحریل لغتی انصافت میگم از یاده یازده قرن قرن ما داریم حالا چون تو بحث مقاسه رو سرداری مهم بخونیم از کتاب های قرنه پنجمایده ها میاریم که اینا ریشه ها رو سر کردن روی سر این نوشته ها در کلمات اینها موجود نبوده و اگر هم موجود بودی یک تحلیل کلی نکردن خیال کردن لغویت لغویون اصلا کارشون فقط شردشون بیان استعماله نه خب همون تحلیلی که ما گفتیم تبازر هست سهر سلو هست،, هست عدم سهر سهر هم هست چی هست, هست. اینا رو هم اونا اعمال کردن مشکلند ولی کی ندرستن که رو که باید بنده بود و جای اونا هم اومدن بر اثر مواد شرم اینها رو اعمال کردن لذا اینی که بگیم اهل لغت من حيث مجموع کارهای تحلیلی انجام ندادن خلاف واقعه این خلاف واقعه درست نیست کارهای تحلیلی خوبی شده کارهایی که الان حتی در سطح علمی قابل قبول از ده قرن قبل در دنیای اسلام شروع شده من همیشه از سرم انصافا یکی از هنرهای بزرگ اسلام تربیت و تنمیه عقل و علم انصافا کلینیک در کتاب کافی البته شبیه این کار بخاری هم داره اما انصافا کار بخاری رو مرووم کلینی رو خیلی من میپسندم مثلا اول کتاب احمد بعد علم بعد توحید بعد حجت بعد ایمان و کفر خیلی تکیفه. تا آخرش به کتاب الوشه خاطر مشه قران دعاء و کتاب الوشه خیلی ترتیب قشنگ اصول رو گرده <تصفيق> انسان احساس میکنه یک ترتیب منح... یک منحج بسیار عقلانی و زیبایی رو گرده این مطلبی بوده که یعنی اون اساس مطلبی بوده که در اسلام روی عقل و علم چون میرونی این دنیا یه موزی دارن که ادیان همیشه روی خرافه و صحر و جادوگری و تلسمات و از این دور چیزا اعتماد دارن خب این چون آشنایی با اسلام من. این که فرقی از فرقی از در دوم مسئله اسناد شروع میشه که الان ما در دنیای مسیحیت یا در دنیای یهودیت نذری از کلام از علمای اهل سنت این بعدشون. بازشون من ما حصل الله تعالی خب چرا این کار کار عقلانی نیست یعنی ما ریز امور و درست امور هر چیزی پیگیریو بخاطر اسناد این کی اومده کیو ورده چه لا این مسائل تحلیلی و مسائل عقلی هم از همون صدر اول از قرن دوم تا است مسلمان‌ها هم فلسفه هم علوم کذب ریاضیات انصافا پرورش داده شد درست اصل یونانی بود یا هند بود یا چین بود اما در دنیای اسلام واقعا اون زیاد کار کردن و خوب پرورش دادن همین تحلیلات لغوی همین رابطه بین کاف و لام می حالا می‌خواد کلمه باشه ملکه باشه کلمه باشه دقیقاً کیش شد و بعد این که از این رابطه از این 6 مورد چند مورد مستعمل چند مورد مستعمل نیست و رابطه این اصوات رو با معنا ببنید این یه چیزه نیست که یا که الان مثلا بهش دست پیدا کردم. خیلی ذریف اینها رو به اصطلاح در کتاب‌های قبلی نوشتن حتی مثلا یک کلمه اول حرف حرف اولش حرف حلقی حرف دومش حرف وسطه حرف سومش حرف اقتدائه زبان خرفهای لحوی یا که این چه تأثیری چه رابطه ای با معنا داره اینا این را انصافا نمیشه امکار کرد زحمت زیاد کشیده شده حالا میگم مورد نفتش چی ولی بله، اینجا من یه ای چیز اضافه بکنم یه بخش دیگه برمیگرد به تحلیل تحلیل هایی که در حیات هستن چه حیات افرادی مثل مشتب چه حیات ترکیبی تام مثل جمله خبریه، جمله اسمیه فعلیه، چه حیات یا جمله انشاییه، چه حیات ترکیبی ناقص مثل توصیف و اضافه چه حیاتی که به اصطلاح مثل هیئت جمله تقدیم ما حرفا این این ها هم انصافاً تا حدی آیان کار کرده سعی کرده اما کار اول بیشتر از کار دومه یه تحلیل دیگه هم هست تحریلیست که برمیگرده بیشتر به همین مفاد حیات و حیات افرادی و ترکیبی اینها و بعد رابطه اونها با مسائل قانونی مثل وجود این قسمت رو در اصول بیشتر کار کردن این سمشه تحریداتو لغت. یعنی اون مقداری که در اصول مثلا ماها راجبه به کار کردیم تو کتابه لغت کار احل بکنیم احلا خبر بودنشو معیم بکنیم پس یکی در باب مفردات مواد انشاءتن ها خیلی کار کرد. تا یه مدتی هم بعضی از مواد در کتب اصول آمد اصول قدیم، حتی اصول علامه. مثلا معنای با، با، و ثم، فا یه مقدار از اینکه کسر و ضراران بود در فقه و که تدریجا در کتب اصول حذف شد. الان ما در کتب اصول خودمون تحلیلات مادیی رو نمیخونیم. اگه اگر به همین مناسبت که مثلا علامات حقیقت چیه بیگه این مناسبت تحقیلات رو نشید. اما خود کتب لغت در این جرد انصافا کار کردن تحلیلات اشتقاقی را هم داره حیات را هم دارن پس کنید شما البته اینو بیشتر کتاب های سرف آمده پس کنید شرح به اصلا شافیه مرحوم رایدی رو نگاه بکنید در معانی حیات باب افعال، باب تحقیل بی می مقدار اینش اون غزواتش تفصیلو شرح می کنه خیلی بحثی درکی خوبی داره چه ایشان چه اون چرنرزا ایشون خب خیلی بحثش لطیفه و خیلی هم مورد اطلاع دنیای عربه شاد من فکر میکنم از اون چند کتاب هایی که مال شیعه باشه و اونها با استفاضه شامل اهل سنت همین کتاب شعر شافی مرحوم ناجی الملای مهرندی باشه خب اونجا داره خودی شافی داره ایشون توضیح داده شعر تحلیل داره خوبه اما انصافش در موارد اصولی ما رو این جهت خیلی کار شده این هم قبول می‌کنه خبرگیه ما در تحلیل معنای حرفی در تحلیل معنای اسمی در تحلیل مشتر در تحلیل فرض کنیم جمله شرطیه مفهوم شرط در تحلیل توصیف خیلی خوب تحلیل کرده حتی حیاتی که جنبه ترکیبی دارن مثلا مثل صيغه افعل لاصفع البته سر شده تحلیل لغوی هم بشه در عین حال تحلیل قانونی هم شده تا تحلیل قانونی شعن آیان اهل لغت نیست اما به هر حال تحلیل‌های لغوی کوبی شده و انصافا در مجموعه بحث های اصولی متاخر شیعه این قسمتها رو خوب تحلیل کرده. حالا ممکنه خیلی فنی نباشه خیلی مثلا چی نباشه اما رو هم رفت که متناسب هستند انصافا کلیات ما یکی اول وصول یک بحثه مثلا معنای حسی اوائل فلسفه مثلا کتاب‌های اصولی در یک جایی توی فعل عمل کجاست یک مواصف تحلیل فعل آیا فیل‌ساز در زمان می‌بندش یک ناهماهنگی ما داریم یعنی کارهای ما تو اصول شیئی امشب مرکب و سر و سامان درستی نداره اما انصافا داریم مخصوصا در بحث اسولی شیعه انصاف هم خوب آمده اینو ما قبول داریم که خیلی خوب آمده در مواد هم کتب اخلاقی خوب آورده خیلی درامدش انصافا در طول مدت واقعا متنور شدن به نورانیت رسول الله که عقل و عین رو به کار بردن این دوتا اساس کار پس این مقداری که ایشون فرمودن انصدار که اصلا با خودش بوزور میشه که درسته تا حدی هست در کتب ما بلویجران می‌بینیم، با اینکه منشأش غالباً نبودن اطلاعاته. اون تعدد ادالات که بخیر خیلی دیگه اون دیدی که تحوز شریعه سر دیگه یا وجل خبر سره، چون خود وجل خبر سره قبول نداریم، بالاخره تفصیل در باب قول و عمل. پس در اینجا صحبت‌های شده بود، خوند این مطالبیشان رو، خیلی دشیناست، مشکل است. اصلش مشکل مشکلات به مناقشه نداره. <متصف> <متصف> من بهش که تو بله قبول کردن اجماع چون وجدانیه که اجماعیش ممکن نیست جواهر مراجع در بعضی از مال مال قرآن قالو قرآن خود نوشتن که نوشتن دیگه بحث ما اینه که اینها ناشی از آگاهی ناآگاهیه تعصب <تصفيق> یا تعدد و ادالت یا حجج این اینا منشأش یک چیزه رجوع به تعبود منشأش ناآگاهیه ما همیشه عرض کردیم تعبود مثل اینکه یک ای کسی شما داخل اتاق تاریک بره دست شما رو بگیره بگه بیا همراه من بیا خب شما هم در و روشن را دست رو اتاق اتاق تاریک رو روشن می‌کنم با میگن چرا دست میدهستی خب ممکنه تو اتاق منشأ خطر بسازی دایی تو اتاق تاریک قدم بزنن دستم دست کسی دیگه بدن <تص> فرقش اینه این اجماعی که گفته شده همینطوره بردن در اتاق تاریکه حجت خبر قول واعد سر، حجت قول تعدد با اداره تمام اینها بردن در اتاق تاریکه. اصلا به نظر ما این تحلیلش اینه. حث بوده، ای نمیشه انکار کرد. اولش این مصادر لغتی چاپ نشود در اختیارشون نبود. اصلا بیشتری که این آیان به لغت مراجعه میکنن چون نیازشون همین مقدار بود. سعی می‌گیر میکرد به کتاب لغت این دیگه اطلاعات کافی از لغت عمل درست شد چی درست شد؟ اصلا کتاب ها رو چجوری نوشتن. این خودش چی بود؟ حدود معلوماتش چی بود؟ چی خونده بود؟ چه مساز داره؟ خودش صاحب نظره نظراتش از کسی دیگری گرفته. دیگه اینا نمیمون تحلیل بکنن کاری میانش خب ما بگییم تو حوزه ما یک سال دو سال وقت بر برای های مسئولیات بدهیم. ما نمیخوایم بگییم در حوزه ما، بیان رخ رو بگذارن برای اینکه که کتاب قاموس رو بخونن یا کتاب سهار رو بخونن لیکن کلیات رو بیشه پیدا که هم رو به این ترتیب که بگیم کبادر از داردن سهده سر و سهده هم لب بگیم هم حل نمیشه کلیاز باید حل نمیشه با این تا کلبه این کلیات حل نمیشه محصوصا مواحثی مثل باقر بیشتر از قدیل قضای خارجیه نه قضای حقیقی در غذای خارجیه رکن اساسیش تاریخه رکن کتاب تصدبوله اصلا اون رکن اساسیه وقت و الان بحث های بسیار فرابان ناشته نمیخواد بگم همه اون کتاب ها یا در اون خونده بشه یه دو سالی رو وگذارم برای آیون به جایی مثلا کتاب مغنم علاشان تا حتی آخه بخونن همراه او یه تحلیل تاریخی بدن، وضد تاریخی بدن. ما الان در کتب لغت این مشکل کاری گرفتن که مشکل مثل رو میگن نه، اگر تراز کویم فرم دسترس این مشکل خیلی چیز نیست به نظر من. مشکل اساسی این که لغت آمده سعی کرده دنیای عرب رو یک نواخته حساب بکنه در صد دیگه مشکل کاری نشین استعمالات ممکن است ایش مال ایران باشه، کیش مال خیزان باشه، باشه ایش مال یمن باشه، دیگه, دیگه, دیگه مال فرضون شام باشه. نقاط مختلف عربی یعنی به عبارتون اوخرا در کتاب به اسم در کتاب لغت مجموعه ای از کسانی که به لغت عربی صحبت کردن حساب شده. اما شما تو خود اون ببینید چند تا جاهات اون در جاهشون فهمید بعضی اصطلاحشون یعنی ما یک مشکلی که الان داریم ما چون بیشتری ملیار کار ما عبارت از یک کتاب و دو روایات ما در باقه کتاب بیشتری مشکلی رو که داریم در حقیقت مربوط از به دو تا فرهنگی مدینه و مکه یعنی اینها در کتب لغتی که انصار مکان رو در نظر نگرفتن یکم انصار زمان این دو تا انصار مهم رو در نظر نگرفتن خاصی در روایات آماده که تعام یعنی غذای خشک مثل گندم طعام خاصی به برنج آماده نمیگفتن به رحت نمیگفتن به خرما میگفتن چون خرما بود میمون تا یک ساعت اما رحت چون تازه بود مثل مثلا سی خراب میشد تو چی از بین میرند به اونه نمیگفتن خب این الان در لغت عربی نیست الان نیست چیز. این چیزه تام طعام میه اما شواهد موجود است برای اینکه بگین در زمان پیغمبر توی مدینه این اینجور بود تعام عبارت از غذای بود که صلاحیت بقا داشت چون وساله روزن نبود گندم میتونست بمونه جب میتونست بمونه خود انگور نمیموند ترسیده میشه اما کشمش میتونست بمونه غذای خشکی که قابلیت بقا داشت به این تعام میگفته و تعامل الذین او تو لک هلالدگاه خب مطلقش و باجوق فنن طعام مطلقه شامل انگور میشه خب این باید برگردیم به مجموعه شواهدی که در یک جای معین اسمش مدینه در زمان معین موشذ در همون مدینه در زمان امام صادق طعام به انگور هم میگفتن فکر کنه بله این مشکل در کتب لغت هست اون زمان و مکان رو از معنا برداشتن یعنی آمدن یک لفظ رو به عنوان دنیای عرب کلادتان در نظر تا 6 تا 7 تا تا مواد استعمال دیدن سعی کردن حتی در تلهافه خودشون یک جامعی برش پیدا بکنن حالا بحث بعدی مفاص ما صبر خب صبر رو به معنا قهر اجرفتن که اصلا شوارد نشون می‌ده که صب خودشون یک جدا کردن اثر کردن باز از بعضی استعمالات عربی به کار برده شده که لغزه صبر را نسبت به قسمت اسافل اعضای انسان گفته شده و حتی ازاش اشتفاق ادعا کردن سبهو یعنی مثلا با نایده دارد به قسمت اصافل ارزاش به قسمتی که اصافه ها اتخابش میشی. خب این اگرم مرفر ثابت باشی این احتمالا در یک اشیره خاصی بوده در یک منطقه خاصی بوده زمان خاصی بوده به قسم میکنیم ما یه مشکلی الان مشکل این نیست که استاد دارم. مشکلی که الان ما در لغت داریم مشکل شناخت اصل و متیازها و حقیقت و استعمال قواعد نیست اون واقعا این رو که از در انجام دادن خیلی از زحمت پویدن انصافن با قبول میکنه و مان خوششک بیاوزن هرپشت رو شد سیم پرت و پلا نیست از تو و مربوط و قابل اعتماد و قابل استفاده است انصافاً میشه این رو گفت اما این مشکل اساسی اینه این مشکل اساسی چون لغت عرب یک لغت بسیار واسعی بود و حالاتی داشت تاریخی داشت و خودشون بیان عرب بایده عربی که از رین رفته و عرب جدید به اصطلاح لیکن حرف بیشت اینه مکه تاثیر مدینه تاثیر اراغ اراغ که مثلا وزن در زمان یه منطقه محدودش عرب بودن چون از ایرانیا بود پای سخت ایران بود به یه زحمتی ازیشون عربی صحبت میکردن که بخش عربی ا ولا عراق اساسا تیسفون یا مدائن که جای بغداد بود، چون به بغداد 20 کیلومتر با بغداد فعلی چون بغداد فعلی بنا شده بود پایتخت ها بود. درazem می‌بینی که حالا شام، شام به خاطر نزدیکیش با روم و به اصطلاح موزیان ما با غربی ها خب خالق نهایتی خیلی اصطلاحات غیر عربی داشت. اون وقت خود اهل مکه طبیعتشون به خاطر خوش بودن زمین احل سفر بودن تابستان ها به طرف شام می و زمستان ها که حواظ می شد به طرف یمن رهلت شتای و سفتی در قرآن هم آمده این دو تا دوتا سفر بازرگانی مهم برای اهل مکه بود تابستانی بود یه زمستانی خواهی نخواهی توی راه با دی از اعراب اعراب بدنی که اینها الفاظ خاص داشتن خبشه اینه که حتی منی کمی همیتونه الان برداشته شد اما خب برای کمی مثلا به جای کتاب بکت میگفت کتاب و کشت اضافه چیران یا به جای حمزه این میگفت این رو به استقاله روزی ما خیلی قدیم حمزه رو اشهد و انم اصلاف میگفتن اینا نوشتم در تاریم یواشواش اینا اصلاح رو وقت می آندم به شام شام توش الفاظ رومی بود یمن نسبتا سر بود عمده اشائر عرب هم بازگشتش به یمن این از یمن بود که منتشر شدن اما مثلا در مدینه مدینه چیزی نبود ریلت اشتاهاسته مال مکه هست اشتباه نشه ریلت اشتاهاسته تو مدینه نبود اهل مدینه با خاطر وجود زراعت خودشون خودکفا بودن به استدا دیگه نه اینکه تجارت نبود دیگه اینطور نبود مثل مدینه که راهشون تجارت رو یعنی راه مکه تجارت و آمدن این خودجا این شهر زیارتی و والامزی ما بود. از راه اینا درآمد داشتن دو تجارت دیگه راه دیگه نداشتن اما مدنی ها نه نه شهر زیارتی بود و نه شهری بود که احتیاجی به تجارت داشت باغ در اونجا وجود داشت آب در اونجا وجود داشت کشاورزی تجار... از البته کشاورزی در سطح کشاورزی به اصطلاح امروز ما صنعتی یا بهره‌وری نیست نه یه زمین‌هایی که مثلا 2500 زمین بذارید با بیل بزنه आवाज بکنه خاک آب بکشه اونا رو ارداره بکنه. یه نحره زندگی محدودی خانی نخواهی اینها تأثیرشون به مثل لغت شام یا لغت یمن چندتر بود بله ما به مکه تأثیرشون به یهود زیاد بود مدینه سفایده مهم یهود در مدینه بودن و به این خود قطعه بکنیم یکی از عوامل یک چیز، اون احساس زعفه یعنی وقتی که الان نشد دنیای قلب احساس زعف دو در دو اصطلاحات انگلیسی ا کلمات ما خیلی زیاده این مال احساس زعف دیگه و اصولا مشرکین در مدینه نسبت به یهود احساس ضعف میکردن اصلا به یهود اهل کتاب مولان و مردان آقاان باشه بلده هر بلد تو بلد اهل کتاب به یهود میگفته خودشون اهل کتاب نبودن عالم نبودن تابعاتن یه مقداری تأثر به فرهنگ به اصطلاحات ادری در این زبان اینها جالب من خب وارد بحث بشن پس ما این ما معتقدیم که مسائلی که الان در مجموعه لغت آمده ما مثلا فصلی اوائل کتب لغات ما فارسی مثل کتابی در نیمه های اول قرن دوم حتی کتاب سیوه که روش میگه عرب این میگه اینجوری میگه شعر آورده استشهاد کرده این در نیمه دوم قرن دومه این که نه ما خیلی قبل از اسلام هم میتونیم لغت عرب و شلوغت عرب کار بکنی <تصفيق> قبل از اسلام نه اینکه کار بکنیم کار هم شده هست. و مخصوصا با گذشت زمان خیلی شواهد بیشتر میشه من یک نمونه عینی فقط میخوام بگم رد بشن یک کتابی از من باید بگم ارزش سر و تاریخ العرب قبل از اسلام خب خیلی هم در 9 جلد قطور یک جلد تا بعد با خیلی رحمت باش شواهد دنیای عرب قبل از اسلام چه در لغت، در فرهنگ، در دین، چه در حج، نماز خیلی انصافا مرد فورکاری بوده زحمت زیادی کشیده. خب مثلا راجع به ثمود ایشون داره. حالا ثمو تقریبا شما مکه درم چون میدونید مکه نزدیک به دریاس دیگه. مکه با دریا نزدیکه. حدود 80 کیلومتر از وادی احمر فاصله داره. طبعا مکه یه این معنی میشه رو که اصلا ساحلی چون مکه با دریا در نظر بگه این عرض در نظر بگه در شمالش نبرسیم تا به شامونجا و جنوبش این مجموعه در نظر بگه پس یه سر کلمه دیلیست مکه و قبل از مکه تا دریا شمال و جنوب اینجا منطقه سموده سمود اینجا بوده اصلا سموده معروف در این منطقه است. خب ایشون سری کار کرده خیلی زحمت اون مثلا استراژ نوشته هایی از صمود پیدا شده که اونها خونده بشه این آقای دو تو جاد که ایناو نوشته تا اینجا رسیده خب بعد از ایشان شاد مثلا از بعد از تلیف این کتاب به 50 سال اولن چیزی حدود تا حالا تا این اصلا پارسال یا دوازده هزار لوحه جدید پیدا شده حدود چهار هزار تاش تقریبا تا دو سال پیش خانده شده با یک زحمت خانده شده مخوام خب بگم چقدر پیشن خب خودی کتاب المفسر اطلاع برای اینا نداشتون ما اطلاع بگذاریم و از اجایبی که من در این دیدم خیلی تقارب شدید با لغت عربی داره، عربی مکه مخصوص عجیب از من خودم باعتم میکرد یعنی چون سمو تقریبا یک چند سالی دو سقرد قبل از دستان منخرض شده. اصلا کلا از بین رفتن یه چیزی حدود قرم پنجوم بیلادی یعنی یه دو قرن یه قرمی قبل از اسلام منقرس شدن یه سه قرن قبل شدن حدود هشت قرم در این منطقه بودن من مخابل نگم پیشرفت علم رو برای ما شواهد خیلی خوبی پیدای شده راجبی این که مثلا ریشهای لغت حرم رو تا قبل از اسلام بدونی و الان کارهایی که روی وقت شده خیلی بالاتر از این حرف هست کارهای زیادی شده بیگه ما نسبت به خلیل و سیوه وی و نمیدونم کتاب ساهای جوهری و اینا این دستفرسته که نیستیم ایچی تمام تفکرات اینها رو میتونیم بازخانی بکنیم محدودیت های اینها رو میتونیم بفهمیم کارهای خوب اینها رو میتونیم بفهمیم اصلا الان وضعه ما تعبد نیست. الان وضعه ما اشراف کامل من اینه در مواحث لغوی راه صحیح اینه تو حوضه های ما باید رو این جهت کار بشه یک طولانی شد و در کلیاتش چرا؟ همون اشتهادی که اول میگن تبادر اون به اینیت دارست همین برش همینه تبادر چیه اون تبادر؟ هر سر اون بدونیم این استعمالات از کجا آمده؟ و چند بار هم عرض کردم یک مشکلی که خب طبیعتاً در لغت فارسی همینطوره هم مثلا این لغت فارسی چیه قبلش چی بوده فلان با در زبان عربی به خصوص به خاطر اینکه تدوین لغت بعد از اسلام شده نه فقط بعد از اسلام بعد از اختراق مذاهب شده خیلی باید احتیاط بکنیم که جنگ‌های مذهبی و اختلافات مذهبی و اختلافات صائفی در معانی لغوی تاثیر نگذشته باشه که متاسفانه گذاشته. پس ما هم می توانیم تاریخی بدیم و هم می توانیم اضافي بر روی تحلیلات و دنیای اسلام بدیم. البته این بی این معنا نیست که ما بالاخره در تمام مفردات بلکه در معظم مفردات لغوی یک نتیجه واضحی برسیم. ممکن است در بعضی از موارد شکل یعنی در غنیمت خب دو تفسیر مختلف رو سعی کردن ارائه بدن یه تفسیر غنیمت مالیست که انسان بدون زحمت بزرستیم مثل حدیه غنیمت مالیست که انسان با زحمت داری میدونه که حدیه غنیمت نیست دو تفسیر مختلف لیکن آیا با وجود این مشکل اولا ما میتونیم شواهد رو پیدا بکنیم که غنیمت چیه هم پیدا نکردیم به زن اکتفا میکنیم که انصداد سقیل رو جامعی بکنیم یا چون مسئله مسئله شرعی و تکلیفه وقتی از ناظر لغوی با مشکل شواهد لغوی کافی نبود من برایم وصول عملی به روایات به نکات دیگری کرد. ممکن است ما از نظر تاریخی به نتیجه راست از لغوی در نتیجه هر ثانیه‌ای میخوام بگم که ظاهری که ما میگیم واجیزه می‌کنه همه مشکلات حل می‌کنه چرا چون ممکن است غنیمت در میان مثلا فرق اهل مکه و مدینه یه طور بوده 100 سال بعد همون غنیمت عرب شد این امکان داره شواهد واقع قطعی است که ن... ن... ن... ن... یامر رو عرب، عرب صدای اسلام از طلوع فرج می درستن اما ابن سکی که یک لغوی واقعا بزرگی شیعه هم حتی بسیار مرد بزرگواری هم هست بسیار مرد بزرگوار، خیلی هم انصافن اطلاع داره خیلی پر اطلاع انصافن، خیلی کار کردن لغت مرموم ابن سکی برنی چه این دارم شد که بیشون شیعه کرده. کردن ابن سکید من در کتاب اشتر و یوم الا بعد اضافه را مثلا با سولوشان. چون من رو با طولویشم اگه دوش همینی که از طولوی آفتا که از کلمه گره آن مخانده چون نه نمیشن نه آیه فویل از جواهر در به ها یه تحقیق های پی داره خیلی زخم از کشه من رو با خواهد ساز مجموعه نوکتار که این از از, از م تا کی نبغلقابل به مسعودو همینسه یوم طلوع شمسه <تصفيق> به نظر ما تااوت هم نداره اون در زمان نزول و قران در مکه و مدینه واقعا همینطور بود یوم از طلوع فجر بود ابن سکی در ورداد در قرن سومه ماها من آن یوم رسول شمس بود می وقتی میگه امروز عادت افتاد دارید خب این مورد اختلاف مکان و اختلاف زمانه دقیق میفهمه نه اینکه بگیم و نظام ما وقت می‌خواد از آیات بفهمیم یا از روایات، باز به همون شواهد و همون تعریفی که مرحوم مجتبی رحمشان بود انجام بده. به مراجعه به کتب لغت به جایی نمی‌رسیم. چون کتب لغت در اینجا راست نمیگه. کتب لغت نمی‌گه از از شواهد ساری که یوم یعنی فرش، رو پیش، بعضیش یوم یعنی چه رو هشام. درست از اما هم درسته. لكن وقتی برمیگردیم به زمان روایات مبارکه و روایا کاملا واضحه که در این زمان و در این مکان در این استعمال یوم را تو شد. فرش داریم الان که به مکان ما به اجمال عرض کردیم این باید بررسی بشه جای تعبد نداره امکانات ما فعلا برای تعبقل و آگاهی یافتن و تحریر کردن چه بیفرابان تر از ساده شده نکته این جمعایی هم باید, باید مجموعه این نکات بکردن زن نظر